ولوی قنیه شانزدهم زیگادی 658 شانزدهمین سال سالگرد روزی است که جلو کاروانسرای شکرچی با شمس روبرو شدم جمادی اول هر سال در آن روزهای خاص گوشه اختیار میکنم زمان سنگین میشود سنگ آسیایی آویخت برگردنم میشود چهل روز چله می نشینم و به قواعد شمس میاندیشم. هر کدام را تک به تک به یاد میآورم و به محک تجربه میزنم در گوشه دنج از روحم که آفتاب به آن نمیتابد، شمس تبریزی نور می پراکند به چراغ می ماند اگر یکی را که دوستش داری از دست بدهی بخشی از وجودت همراه با او از دست می رود مانند خانه‌ای متروکه اسیر تنهایی تلخ می‌شوی ناقص میمانی خلع محبوب از دست رفته را همچون رازی در درونت حفظ می‌کنی چنان زخمی است که با گذشت زمان هرقدر هم طولانی باز تسکین نمی‌یابد چنان زخمی است که حتی زمانی که خوب شود باز خونچکان است گمان می کنی دیگر هیچگاه نخواهی خندید سبک نخواهی شد زندگیت به کورمال کورمال رفتن در تاریکی شبیه می شود بی آنکه که را ببینی بی آنکه جهت را بدانی فقط زمان حال را نجات می دهی شمع دلت خاموش شده در شب ظلمات مانده اما فقط در چنین وضعیتی یعنی زمانی که هر دو چشم با هم در تاریکی بمانند چشم سومی در وجود انسان باز می شود چشمی که بسته نمی شود و فقط آن هنگام است که می فهمی این درد ابدی نیست پس از خزان موسمی دیگر پس از گذر از این بیابان، وادی دیگر در راه است. پس از این فراق نیز، وسالی ابدی. با چشم معنوی که نگاه کنی، شخصی را که تازه از دست دادی، همه جا می در قطری که به دریا می افتد، در جزرومت که با بعد حرکت می کند. و در نسیمی که میوزد به او برمیخوری. در رمل کشیده برشن، در دانه بلوری که زیر آفتاب میدرخشد، در تبسم کودک تازه متولد شده، در نبز مچ دستت او را میبینی. وقتی در همه جا و همه چیز میبینمش، چطور میتوانم بگویم شمس رفته؟ در سختترین روزها دو نفر کمکم کردن، پسر بزرگم و سوفیی به نام سلاه الدین زرکوب. وقتی اولین بار صدای ضربه های چکش سلاه الدین را شنیدم، گمان بردم زربان قلب کائنات را می شنوم. و همانجا به سما ایستادم، و پایکوبی و دستفشانی را که شمس آغاز کرده بود به شکل نهاییش درآوردم. روزی رسید پسر بزرگم با فاطمه دختر بزرگ سلاه الدین ازدواج کرد. این دختر کوشا و عاقل مرا به یاد کیمیای زیبا می اندازد. رفته رفته فاطمه شد چشم راستم. خواهرش هدیه هم شد ششم چپم هرگاه لازم باشد در میان جمع ای ایفا کنم این چشمها راهنمایم شوند. چه کسی گفته دخترها نمی توانند مثل پسرها شاگردان خوبی باشند همان کیمیای عزیز شایستگی دخترها را اثبات کرده بود من هم به احترام روح او نه فقط برای مردان برای زنان نیز آئین سما برگزار می کنم و به باجیان صوفی توصیه می کنم این رسم را ادامه دهند. مبادا گمان کنند زنان از مردان عقبترند یا ناقصترند. انسانی را از انسانی دیگر برتر دانستن و تبعیض قائل شدن خاص ما بندگان است. وگرنه نزد خداوند همه بندگان برابرند. چهار سال پیش سرودن مصنوی را آغاز کردم. بهتر است بگویم مصنوی سرودن خودش را آغاز کرد. آمدن نخستین بیت را غیر ممکن است فراموش کنم. وقت سحر بود. همان هنگام که نور خورشید تاریکی را میشکافت، شکافت ها از دهانم ریخت. بی آن که خود بخواهم بی آن که بدانم چه می سرایم و چرا می سرایم آن روز صبح نفسم شعر شده بود. و از آن لحظه به بعد بیتها با فواصلی معین می آمدند و می آیند شعرها مثل دسته پرندگان مهاجر که دنبال چشمی برای استراحت کردن میگردند در یک لحظه از راه می رسند احاتم می کنند هماواز می و بعد پر می زنند و می روند. در میانشان چنان مصرراهایی است که اگر بگویند بار دیگر تکرارش کن نمیتوانم اگر صلاحدین نبود شاید بیشتر شعرها از میان میرفت و فراموش میشد اما او با صبر و فداکاری زیاد همه را روی کاغذ آورد صلاحدین نوشت و سلطان سلانولد رونویسی کرد به این ترتیب مصنوی صفحه به صفحه شعر به شعر پدید آمد. وقتی سرودن شعری را آغاز می کنم، اغلب اوقات نمی دانم ادامه اش چه خواهد شد. بلندیش را، عمقش را نمی توانم از پیش تعیین کنم. سرودن شعر تمام که می شود، دوباره در خاموشی فرو می روم. در سکوت زندگی می کنم. دو تخلص دارم. یکی خاموش، دیگری شمس تپریزی. به اسم آینه از دست رفته روهم می نویسم. در این میان دنیا نیست دنیایی که از گوشت و پوست و ماده و بیم و امید تشکیل شده به راه خود می رود. بغداد که همه تصور می کردند قلعی ناپذیر است، ششصد و سال پس از هجرت به دست مقلان افتاد. شهری که رفاه و شکوهش زبان زد بود و ادعا می شد مرکز جهان است، در عرض یک روز سقوط کرد. همان سال سلاه دین زرکوب نیز وفات یافت. در تشیع جنازه اش با درویش هایم مراسمی با شکوه برگزار کردیم. کوچه ها را با قدومها ها و تمبور ها و نیه ها به ناله داشتیم. سال 649 هجری از راه رسید و این بار نوبت شکست به مغلها رسید. نام دشمنشان ممالیک بود. مغولها که تا دیروز امان نمیدادند، امروز محتاج امان شدند. انسانی که به موفقیت خوی کرده، گمان می‌کند تا ابد مزافر و ثروتمند میماند. و همه ی شکست گمان می‌کنند تا آخر عمر چمر راست نخواهند کرد. حالا که هر دو در اشتباهند. در این دنیای فانی باد به سرعت جهت عوض می‌کند غم و شادی پیروزی و شکست هیچ کدام ماندگار نیستند جز صورت نامرئی پروردگار همه چیز همیشه در حال تغییر است طی این مدت یکی از کسانی که بیش از همه مایه مباهاتم شد حسام طلبه بود که مدرسه را رها کرد و به خانقاه آمد چنان زود به درجه کمال رسید و در طریق معنویت چنان به سرعت پخته شد که الان همه به او احترام می‌گذارند و حسام چلبی خطابش می‌کنند پس از مرگ صلاح الدین اوست که در نوشتن اشعار یاریم میدهد می‌دهد کاتبی که مصنوی را قلمی می کند اوست. هرگاه کسی از حسام چلبی متواضع و نیک و خسال روشندل بپرسد تو که هستی؟ همیشه این جواب را میشنود. من فقیریم که از پی ردپای شمس تپریزی می رود. همینم و بس. نه به دنبال مریدم، نه به دنبال مراد نیتم کوشش در راه حفظ میراث انسانی نیکوست و به این ترتیب سالها گذشت و می گذرت. پیر شدنت را بدنت پیش از سن و سالت حس می کند پله ها را بالا می روی و به چهل سالگی می رسی بعد پنجاه سالگی بعد پنجاه و پنج و تا چشم به هم بزنی به شست سالگی رسیده ای هر ده سال یک بار برمیگردم و به گذشته مینگرم. ناچارم به تیه طریق به پیمودن این راه با حروف کاخی ساختم برای خودم راه روهایش اشق دیوارهایش عشق، اتاقهایش عشق. دنیا در نظر غیر صوفی هر جمرج است با آدمهایش، مباحثهایش و تزادهایش حالان که این همه کشمکش تنها در یک چلمه پنهان است چلمه در حرف پنهان است حرف در نقطه پنهان است در نقطه زیر به. با این معرفت ما شب و روز در حال سما در میان جنگها ها، سوء ها، سو دلشکستگی گرسنگی و بینوایی، بی, بی انصافی و بی ادالتی، در حالی که همه چیز را در گرفتی اما به چیزی نمیخوریم چرخ میزنیم تا ابد اگر همه جهان بسوزد زمین و آسمان به سرخی بزند قصرها را آب ببرد پادشاهی برود و پادشاه دیگری بیاید برای ما السعیه است در غم در شادی در امید در یأس هم به تنهایی هم با هم دیگر هم آرام هم به سرعت روان مثل آب چرخ میزنیم در سما حتی اگر تا زانو در خون خود فرو برویم دست نمیکشیم از چرخ زدن به دور عشق از سجده کردن در برابر عشق از سجده کردن در برابر عشق کائنات آهنگی کامل و نظامی حساس دارد قطعات و نقطه ها مدام عوض می شود. اسمها و مقام ها نو می شود. انسان هر حرفی که بزند هر ضرری که برساند به سوی خودش برمیگردد. حالان که انسان این را نمیداند ماهر است در به سختی افکندن خود. همیشه دیگران را مسئول ناکامیهایش هایش جزئیات پاک می و از نو کشیده می شوند. اما دایره ثابت می ماند. قاعده سی حتی اگر نقطه‌ها مدام عوض شوند کل همان است. به جای که از این دنیا می رود, دوستی دیگر به دنیا می آید. جای هر انسان درستکاری را انسانی درستکار می گیرد. کل هیچگاه دوچار خلل نمی شود. همه چیز سر جایش می ماند. در مرکزش هیچ چیز هم از امروز تا فردا به یک شکل نمی ماند. تغییر می کند. به جای هر صوفی که می میرد، صوفی دیگر میزاید. ملت ما ملت عشق است. طریق ما طریق عشق. در زنجیره بی پایان دلها تنها یک حلقه ای. اگر جایی از زنجیر بکسلد، فوراً حلقه ای دیگر به آن افسوده می شود. به جای هر شمس تبریزی که می رود در عصری دیگر، در مکانی دیگر، با اسمی دیگر، شمسی دیگر می آید. یکی شمس به دنیا می آید، یکی شمس از دنیا می رود.